بسم الله الرحمن الرحیم فصلن فررحنی فصل بعدی در رابطه با رهن هست رهن همون گروه هست موقعی که فروشنده چیزی رو میفروشه فروشه به شکل وامی مثلا خب اینجا جهانیتی این که اطمینان حاصل بکنه مالش از دستش نره و اون طرف پولشو بیاره یه چیزی ازش میگیره اینو میگن ره گرو پس قرار دادن یه چیز مالی به عنوان وسیقه در مقابل دین که از همین ره اون دینو تکمیل بکنه زمانی که اون طرف مقابل نتونه دینشو بده اینو میگن ره اگر آنچه طرف نتونست اونو وامشو بیاره یا نداد در هر صورت وسیقی هست که گذاشته بله و کلو ما به بیعوه جازه رهنو هر چیزی که میشه اونو فروخت میشه اونو به عنوان رهن هم گذاشت فدیون در دینها اروامها استقر ثبوتها في الذمه در دیون مستقره در اون دیونی که در ذمه ثابت هستند در ذمه شخص ثابت هستند یعنی چی یعنی از فسخ بودن در امن هستند مانند دیه، پول دیه. خب پول دیه دیگه بر ذمه اون طرف ثابت نمیشه اینجا فسخی مسخی چیزی کرد. یا وام. شما به کسی وام دادید. پس جائز است. هر چیزی که فروشش جایز، رهنش هم جایز است در دیون مستق... در دیونی که در ذمه ثابت هستند. البته دیون غیر مستقره هم میشه رهن گذاشت زمانی که لازمی باشند. مانند پول کالا قبل از قبضش این مستقره نیست مانند پول کالا قبل از قبضش بله ولی راهنی الرجوعو فیه ما یقبز خو راهن میتونه بر بگرده قبل از اینکه که مرتحن اونو تحویل بگیره راهن دهنده میتونه بر بگرده نده قبل از قبض مرتهن مرتهنمون رهنگیرنده رو میگند و راهن رهندهنده رو میگند پس راهن میتونه از اون رهنی که میده بر بگرده اون رهن نده قبل از قبض مرتهن اما بعد از اینکه قبض شد دیگه نمیتونه برش بگردونه تا زمانی که دین کامل داده بشه مرتهن اونی که رهن گرفته اونی که گرو رو گرفته زامن نیست مگر اینکه کوتاهی کرده باشه مثلا طرف واماشو داده این رهنگیرنده هنوز رهنو باز نگردونده وگفت گفته رهن و بیارد دیگران الان هم تموم شده امتناع ورزیده بعد از اینکه اون شخص وام رو داده اینجا اگه دیگه تباه بشه بر یعنی بعد اینو بده زامن اینجا بله و اذا قبض بعد الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه زمانی که قسمتی از حق مرتهن قبض کرد رهن گیرنده قسمتی از اون رو از راهن گرفت میگه راهن خارج نمیشه هیچی ازش تا اینکه تمام اون دین رو مرتهن بگیر بله راهن زمانی آزاد میشه که مرتهن تمام دینش رو از راهن بگیره فصلون فی حجری فصل بعدی در حجر هست ممنوع تصرف کردن در مال و امثالش شخص نتونه در مالش تصرف انجام ده اونو بفروشه یا بخره ممنوع تصرف بشه اینو میگن حجر والحجر الحجر رو یعنی حجر یا همون منع تصرف در مال و در چیزا دیگر بر شش گروه پیش میاد علا صبیق بله بچه ممنوع تصرفه بچه هست فرزن پنج سالشه مالی داره این دیگه نمیتونه خرید فروش کنه مگر با تفصیلیات خب اون پس بچه دو این شش گروهی که برشون حجر میاد کیا هستند یک عصبی بچه دو والمجنون دیوانه سه و صفیه المبذر لمالیه اونی که مالش رو علکی مصرف میکنه مالش رو الکی فضول خرج ویل خرجیه که سر جای خودش خرج نمیکنه مالو تباه میکنه مالو به تباهی میکشه تو دریا میاندازه آه؟ خلاصه تبذیر میکنه مالو در غیر جای خودش مصرف میکنه چار والمفلس و لذی ارتکبت مفلس ناداری که دینها روش اومدهاند و مالش به اندازه نیست که اون رو بده پس مفلس اون شکست خورده یا اون ناداری رو میگند که مالش به اندازه اینکه که رو بده نیست این هم حجر میشه ممنوع از تصرف میشه ومای دینداراش دیگه داده بشه پنج و المریض و فیمازاده الى الثلث مریضه که ترس مرگ درش هست در اضافه از یک سوم نمیتونه حق تصرف داشته باشه در مالش نمیتونه مالشو وسیعت کنه به کسی دیگه چرا چون حق ورسه هست پس اگر شخص مریضی مخوف علیهی داشت مریضی که ترس مرگ درش بود دیگه در بیش از یک سوم مال نمیتونه حق تصرف داشته باشه تا یک سوم میتونه میتونه اونا رو وسیعت کنه و کارای دیگه شش وال عبد الذي لم یذ له في تجاره شیشون کسی که محجور هست برش حجر میشه اون برده ای است که ازن تجارت بهش داده نشده از طرف سع بله. حالا اینا رو این ششگروه گفت مختصر توضیح هم در مرسول میده، میگه تصرف السبی والمجنونی وصففی غیر و صحیحه تصرف بچه دیوانه و صفیح صحیح نیست گینا تصرفی کردن باطله درست نیست در مورد صفیح آورده که نکاهش به ازنوالیه چون نکاه یک تصرف دیگه نکاهش به ازنوالیه درست است. و تصرف المفلسی یا ذمته دون اعیان ماله تصرف شخص مفلس در زمهش صحیح هست منند که یه چیزی رو بخره با پولی که در زمهش هست نه با این وسائلی که الان داره با این پول هایی که الان داره چون اینا رو باید بدن به اون وامدارای قبلی پس تصرف مفل صحیح در ذمهش مانند که چیزی رو بخره با پولی که در زمش باشه که باره دون اعیان نه در اون مالهاش که موجود هستن من این بیاد یه چیزی رو از اون مالایی که موجوده بفروشه یا یه چیزی رو بخره با اون مالی که اونجا داره یا اینکه بیاد بردهای از بردههاش رو آزاد بکنه مثلا اینا مثال بودند و تصرف المریضی فی مازاده الثلث موقوف على اجازه الورثه من بعده خب یکی از این ها مریض بود که بیشتر از یک که در بیشتر از یک سوم مالش حق تصرف نداشت میگه تصرف مریض در اضافه بر یک سوم مال موقوف بر اجازه ورثه هایی است که بعد از مرگش داره و تصرف فی فیما زاده الى موقوف، موقوف خبر تصرف هست تصرف مبتده میگه تصرف مریس در اضافه بر یک سوام مال مثلا فرزن سه میلیون داره یک سوم مالش انجه یک ملونه درون یک میلیون حق تصرف داره ولی اضافه بر یک میلیون نداره میگه تصرفش بر اضافه بر یک میلیون موقوف بر اجازه ورسه هاست که بعد از مرگش داره اگر اونا اجازه دادن بش خلاص این تصرفش عملی میشه اگر نکنه و تصرف العبد یکونو فی ذمته یتبع بهی بعد اطقه و تصرف برده اگر برده اومد تصرفی کرد کاری انجام داد میگه این تصرف بنده البته بدون اذن سید و تصرف شخص برده بدون اجازه سیدش چون اگر با اجازه سید باشه که اونجا دیگه بر زمه سید میشه صاحبش میشه و تصرف برده بدون اذن سیدش در زمه خودش هست که بعد از آزادی ازش گرفته میشه فصل في الصلح. فصل بعدی در صلح یصح صلح مع اقرار في الاموال و افضى اليها صلح قرار دادی است که منجر به قطع در پایان درگیری میشه صلح اون قرار برای پایان درگیری و یا صلح مع اقرار. صحیح هست صلح با اقرار. یعنی چی؟ یعنی مثلا مدعه اومد سر یکی ادعایی کرد. اون مدعا علیه اونو اقرار کرد. اون حق اقرار کرد. که بله این چیز برگردن من هست. این کار رو من انجام دادم. اینجا میتونن با هم دیگه صلح کنن. ولی اگر مثلا شخص اومد سر یکی ادائی کرد اون اصلا قبول نکرد اینجا دیگه نمیشه صلحی کرد چون طرف قبول نمیکنه. البته این تفصیلاتی داره احناف مخصوصا نظریاتی داریم مورد دارند خب ما کاری نداریم این عباره رو حل میکنیم میگه صحیح صلح با اقرار اون طرف اقرار رو بکنه اما اگر این کار نکر اگر اقرار نکرد انکار کرد یا سکوت کرد صحیح نیست اندین که شخص اومده ادعا کرد که این خونه مال منه، طرف مقابل انکار کرد یا سکوت کرد بعدا اومدند بر همین چیز با هم دیگه صلح کرد این دیگه جایز نیست پس صحیح است اقرار صلح با اقرار در اموال ترقیشون روی اموال بود وما افضا إليها وانت شك منجرب اموال مشه مثل قصاص تر قصاص هم مش صلح کرد مانندين كبرا يك شخصی بر شخصی دیگر قصاصی ثابت شد و اومد صلح کرد بر مال قصاص ثابت شده سر یکی مال یکی حالا میان صلح میکنند بر مال به جای قصاص خب پس این منجره به مال شد ما افضا اله ها پس صحیح صلح با اقرار در اموال و ما افضا اله ها و اون چه که منجره به اموال میشه یعنی اون چیزی که سرانجامش مال میشه مثل این قصاصی که اینجا مثال زدیم و هو نوعان و سلح بر دنوه ابراء و معوازه. ابراء و معوازه. صلح بر دنوعه یکی ابراء یکی معاوزه هست ابراء دیگه چه هست؟ فلی ابراء و اقتصاره من حقه علا بعضه ابراء اینه که مثلا شخص هزار تومن برش هست درگیرند اون طرف قبول میکنه که آره مال شما سفت دونه هست هزار تومن روی من هست خب اینجا پس شخص بهش میگه آقا 500 من گذشت کردم بیا صلح کنیم 500 دیگه رو بیار خب میشه اینجا صلح کرد اینو میگن ابراه یعنی این که از قسمتی از حقش گذشت بکنه الاقتصار و من حقی علی بعضی اکتفا کردن از حقش بر قسمتی از اون حق پس این صلح صلح جایزی شد یکی این که اون طرف مقابل اقرار کرد دوم که اینجا صلحه کردن و از کدوم نب بود از نوع امرغاب بود این قسمتی از حقش رو گذشتن. والا جزز و تعلیق و شرط اما جایز نیست که این صلح و بر شرط بکنه به چه شکل؟ شخص و آقا وقتی که رمضان اومد من با تو صلح کردم از هزار تومن به 500م اینجا معلقه به شرط کرده صلحو یا اون عبرارو صلحی که از نوع عبرار هست و المعاوزه معاوزه دیگه چه هست؟ ادوله من حقهی الى غیره معاوزه اینه که اون طرف مقابل مال این مثلا ماشینی رو فرزن برده یا برش گردنشه. در هر صورت، در گیریشون روی ماشینه این شخص بگه آقا جای ماشین مثلا من تو رو همین تراکتوری رو که داری قبول میکنم معاوزه و المعاوزه ادوله من حقه لا غیره ادول کردن از حقش به چیز دیگه از حقش به چیز دیگه ادول میکنه میره روی از چیز دیگه میگره و یجری علیه حکم البه بر این نوع یعنی معاوزه حکمه معامله جاری میشه کی چیزایی در معامله جایز بودا؟ خیار مجلس بود، خیار شرط بود ردبعی بود، احکامات دیگه بود در این نوع صلح اینا جاری میشند و یا جوزو للانسانی یعنی این یو روشنن فی طریق لا يتضرر المار بهی جایز برای انسان که روشن نسب کند این روشن چی هست یه چوبایی هست که از دیوار تو کوچه درازند حالا گاهی موقع یه چوبه گاهی موقع دو تایه گاهی موقع مثلا الان این روزا طرف این طبقه پایینش که اتاق درست کرده تو امروزه مثلا اتاق بالایی طبقه بالا رو که درست میکنه یه متر این طرف تر میاد دیگه تو کوچه این هم حکم همین روشن رو میگیره جناح هم بهش میگند جائز است که انسان نسب کنه همون تیر رو همون چوبی که میاد تو کوچه ولی در کدوم نوع راه ها در راههای های نافذ منظور راه که عموم مردم از اونجا میرند منخیابون حالا به التهای مختلف مثلا ناودان میاد تو کوچه یا چوبی بود که قدیمها اینا چه کارایی باش داشتند خلاصه این میگه جایز است در راه نافذ یا در راه عمومی یا در همون خیابون به گونه ای که لا يتضرر المار رو به به گونه ای که اونایی که از این راه رد میشن zarar نبینند یعنی بگونه ای مثلا ارتفاع داشته باشه زمانی که شطوری حالا قدیما البته از اونجا رد میشد دیگه با این چوب برخورد نکرد یا انسانی کرد میشد دیگه سرشو پایین نمیگیره باید بلندتر بوده از جایی که مردم رد میشن با سر مردم یا با حیوان با بار برخورد نکند این روزا مثلا طرف سیمشو از کوچه رد میکنه حالا اگر فقه رو بررسی کنیم حکم اونش بدیم این سیمش یا اون هر چیز ای که داره بگونهی باشه که یک ماشین بابارش با این برخورد نکنه ولی اجوز فدر بالمشترک الا به اذن شروع اما در راه مشترک یا در راه غیر نافذ یا در کوچه های بومبست اونایی که عمومی نیستند فقط چند تا همسایه از اون راه استفاده می کنند جائز نیست مگر به ازن شرکا مگر با اجازه تمام اون شریکایی که از این راه استفاده می کنند. پس اگر درب مشترک بود بین چند نفر، نافذ نبود. لایجوزف درب المشترک ای غیر نافذ. جائز نیست در درب مشترک مگر به اجازه شرکا. شرکا کیا هستن؟ اونای هستند که دروازه های خونه شون اینجا باز میشه فرضا یک کوچه هست هزار متری دو تا همسایه اول کوچه نشستند ده تا همسایه، هستند دو تا دیگه اون طرف اون طرف تمام دروازه های خونه هاشون تو همین کوچه بازه خب این اول کوچه ها نمیتونند روشن نسب کنند یا همون چوبایی که تو کوچه میومد نسب کنند مگر به اجازه اون شرکایی که تا آخر کوچه نشستند چون اینا بار دارند از اینجا رد میشند مرد مزاحمشون نشه اما اونایی که ته کوچه نشستند اگر خواستن نسب کنند دیگه اجازه این نیازی نیست بیاد با اینایی که در اول کوچه نشستند اجازه بگیرند چرا؟ چون اینا تأمین قسمتی که دارن زندگی میکنن مشترکاً بله ویجوز تقدیم الباب فی الدرب مشترک. جایز است مقدم کردن دروازه در درب مشترک در همون کوچه بمبست. به چه شکل جایز مثلا دروازه شخص فرزن زمینش 100 متر به کوچه چسبیده یعنی درازی زمینش 100 متر دروازهش قبلا اون آخر خون، حیات خونه بوده که به طرف بمبس کوچه هست اگر الان دروازه رو اونجا ببنده و بیاردش اینجا اولتر کوچه میتونه میتونه این کار بکنه پس جایز است مقدم کردن دروازه در راه غیر نافذ در راهی که مشترک هست بین چند نفر جایزه که دروازهشو از اون سمتی که به سمت بومبسته یا به سمت آخر کوچه به عبارتی دیگر ببنده و بیاره به اول کوچه. و يجوز یجوز الا به اذن شرکا اما جائز نیست که دروازشو از این سمت اول کوچه ببره به اون سمت آخر کوچه. تمام اینا جهت شدن شدنه شریعت اسلام خیلی احکامات نابی داره جهت حق الناس. ناس بس جایز نیست که دروازش رو تأخیر کنه به آخر ببره. چون هرچه به آخر ببره خب اینجا دیگه حقش بیشتر میشه. اما زمانی که دروازه قدیمی رو از اول ببنده بیاردش به اول کوچه اینجا در واقع از قسمتی از حق خودش گذشته. قسمتی از حق خودش رو ترک کرده. چون هرچه گفتیم دروازه به آخر کوچه باشه این حق بیشتری داره. پس جایز است که دروازشو در راه مشترک، در راه غیر نافذ به اول کوچه بیاره ولی جایز نیست که اونو تأخیر بده مگر به اذن شرکا اون شرکایی که در این کوچه با هم شریکند فصل الحواله و شرائط الحواله اربعه اشیاء شرط حواله کردن چهار چیز است دیگه حواله چی هست؟ یه توضیح کچی که بدم زید من از زید طلبکارم و بکر از من طلبکاره. بکر میاد پیش من که وام منو بده من بهش میگم برو از زید بگیر اینو میگند حواله کردن حواله اینه که دین نقل بشه از ذمه حواله کننده به ذمه حواله شده طرف اومد بهش میگم من وام تو من ندارم خلاصه یاد دارم در هر صورت بهش میگم برو از بکر بگیر برو از زید بگیر اینو میگن حواله کردن منو میگن محیل آغازه دو میگن محال علی میگه شرائط الحواله اربعه اشیاء شرط های حواله کردن یا حواله 4 چیز هستن یک محیل راضی بودن محیل راضی بودن من بکر میاد پیش من من میفرستمش پیش زید منو میگن محیل دو قبول المحتال قبول کردن محتال آقای بکر قبول بکنه برای اینکه من میفرستمش سه کون الحق مستقرن فی ذمه <تصفيق> حق مستقر باشه در ذمه اینجا شارحین این کتاب حبیشو جام میگن متنش که مراد به مستقر اینجا ما يجوز و بی او اون چیز رو میگن که فروشش جایز است نه اون چیزی که از فسخ در امان باشه تو دیون اونی رو میگن که اون از فسخ در امان مونده باشه دیگه قابل فسخ نباشه دیون مستقره اونی که رو میگن که قابل فسخ نباشه ولی اینجا منظور کون الحق مستقرا فی الذمه یعنی حق چیزی باشه که فروشش جایز باشه معنیش کردن شارهیم اقناع اقناع شربنی چهار اتفاق ما في ذمه المحیل والمحال عليه في الجنس چهار من چیزی نکه ون چیزی که برگردن امانه و در این مثال خودمون برگردن زید چون منو میگن محیل چون من بکر رو حواله کردم به زید دیگه منو میگن محیل زید و میگن محال علیه من چه زمان میتونم اون طرف حواله کنم به زید میگه اتفاق ما في ذمت المحیل و المحال علیه الجنس اون چیز ما چیزی که برگردن منه و من میفرسمش در نزد زید هر دوتا چیز در جنس یکی باشند مانند تلا و تلا تلا در مقابل تلا نقره در مقابل نقره پس متفق بودن اون چیزی که در زمه من است و در ذمه آقای زید با هم متفق باشند در چه چی چیزی؟ اون چیزی که بر ذمه من است و بر ذمه آقای زید در جنس باید متفق باشند و نو در نو یعنی صفات. یعنی مانند عالی بودن و پست بودن که اون قدیما این چیزا در اون پول یا در اون چیز وجود داشت الان هم البته وجود داره بله هیچ فرقی نمیکنه پس در جنسی که باشن مانند تلا در مقابل تلا در نوع یعنی کیفیت شونی کی باشه صفت شونی باشه و الحلول اون وقتی که طرف اومد از من بگیره اون وقت آقا زید هم فرار رسیده باشه که من میفرسمش و التأجيل و در عجلش در وقتش این که آیا و الحلول و التأجيل این که وقتش رسیده یا نرسیده در این چیز هم با هم دیگه متفق باشه اون طرفی که میاد پیش من الان وقتشه که بیاد وامشو از من بگیره خب من به شرطی میتونم بشه بگم تو برو پیش زید که مدت اون هم اومده باشه بایلی و تبرو ذمه المحیل میگه بری میشه با حواله صحیح ذمه محیل ذمه من دیگه بری میشه دیگه شخص اونارو دیگه موقع قبول کرد دیگه از زید بکیره بله و حق در ذمه محال علیه میره که در این مثال خودمون زید بود پس موقع من بکر فرستاده من از بکر بدهکار بودم و زید ازمن موقعی که من بکر فرستادم پیش زید زید میگن محال عليه و منو میگن محیل گردن من دیگه بری میشه حق در ذمه آقای زید میگرده بله فاصل ضمان الدیونی زمانت دین ها و یصح ضمانو دیون المستقره في الذمه اذا علم قدرها بحث ضمانت اومدیم ببینیم ساعتو تا همینجا کافیه تا بحث زمان